از من جدا که تو ام نور دیده ای آرام جان و مونس قلب رمیده ای از دامن تو دست ندارند آشغان پیراهن سبوری ایشان دریده ای از چشم بخت خیش مبادت گزند از آنک در دلبری به قایت خوبی رسیده ای من ام مکنز اشق و مفتی زمان معذور دارمت که تو را ندیده ای آن سرزنشت کرد تو را دوست حافظ پیش از گلیم خیش مگر پاکشیده ای